یکی بود یکی نبود. خواهر و برادری توی شهری زندگی میکردن و از مال دنیا چیزی نداشتن. برادر کله سحر پامی شد. تیرکمونش رو بر میداشت و میرفت شکار. آهوی پرنده چیزی شکار میکرد و میوورد دوتایی با خواهرش میخوردن. هر روز آفتاب که غروب میکرد خواهر استقبال برادرش تا سر کوچه می میومد اسبشو میگرفت و میبرد طویله برای اسبش کاه و جو میریخت اون وقت میرفت با برادرش شام میخوردن و صحبت و درد و دل میکردند بعدشم میخوابیدن یه روز برادرش وقتی توی شکار بود دختر کنار چاه اومد یهو صدایی از توی چاه به گوشش رسید. خم شد و گفت آدمی یا حیوانی؟ هر کسی هستی حرف بزن. صدایی از ته چاه گفت تناب بنداز من بالا بکش. تا بهت بگم چیم. دختر این ورون رو نگاه کرد و تنابی پیدا نکرد. آخر سر چادرش رو باز کرد و توی چاه انداخت. هنهن کنان اونو بالا کشید دیو زرد و بد ترکیبی سر چادرشو گرفته بود دختر فریاد زد خواست فرار کنه که دیو دستشو گرفت و گفت کجا فرار میکنی؟ حالا که منو از چاه در باید زن من بشی از دختر انکارو از دیو اصرار آخر دیو گفت اگه زن من نشی هم تو رو میکشم هم برادرتو دختر ناچار شد و قبول کرد زن دیو بشه غروب آفتاب برادر به خونه برگشت دیو توی سوراخ قایم شد تا برادر اونو نبینه و صبح بیرون اومد یه روز دیو زرد به دختر گفت دیگه حوصله ندارم توی سوراخ تنبه قایم شم باید برادرتو مدتی دست به سر کنی. چند روزی آسوده زندگی کنی. دختر گفت آخه من توی دنیا غیر از برادرم کسی رو ندارم. اگه اونم بلایی سرش بیاد چه خاکی به سر کنه؟ دیو گفت این حرفا سرم نمیشه. باید خودتو به ناخوشی بزنی. اصری که برادرت اومد بهش بگی مریض شدی. بهش بگی مردم میگن فقط انگور باغ دیو سفید دردمو درمون میکنه. دختر از قصه شروع کرد به گریه کردن تا اصر شد. برادرش برگشت. خواهرشو توی اون حال دید و پرسید: چی شده خواهر؟ خیلی وقته که تو دیگه اون خواهر اولی نیستی. اصرا را استقبالم نمیای. آخه چرا اینقدر عوض شدی؟ خواهر گفت: برادر از خدا پنهون نیست که از تو چرا پنهون کنم؟ مدتی شکم درد دارم. همسایه ها میگن علاجش انگور باغ دیب سفیده. برادر گفت خواهر جان امشبا به من مهلت بده. فردا پا میشم میرم. از هر جا شده برات پیداش میکنه. حتی اگه مجبور باشم تا آخر دنیا برم. صبح خورشید تیغ نزده برادرش بلند شد اسبشو سوار شد و راه افتاد رفت و رفت و رفت تا رسید به باغ دیو سفید اسبشو گذاشت پای دیوار و خودش از دیوار بالا رفت همین که پاش به باغ رسید دیو سفید نهرهی کشید و گفت اونجا اومدی چیکار الان سر به تنت نمیذارن. پسر به دیو حمله کرد و کمرش رو محکم گرفت. دیوم گردن پسر رو گرفت. خلاص نیم ساعتی با هم کشری گرفتن. آخرش پسر دیو رو از زمین بلند کرد و بالای سرش برد. محکم به زمین زد. نشست روی سینه دیو. دیو گفت عجب پحلوان شجاعی هستی؟ اما بهتره یه دفعه دیگه منو به زمین بزنی. پسر گفت رسم ما این نیست ما یه دفعه بیشتر به زمین نمیزنیم دیو که نامید شد نرهی از ته دلش کشید و برادرش دیو زرد توی خونه صدا رو شنید به دختر گفت بیچاره شدم بدبخ شدم برادرت برادرمو کشت دختر خوشحال شد و حالش کمی جا اومد. پسر و کشت و مقداری انگور چید و برگشت. انگورها رو به خواهرش داد و گفت بخور خواهر، کاش که دوای دردت همین انگورها باشه. ده 15 روزی گذشت. باز دیو زهر شروع کرد به نق زدن. "باید برادر تو سر به کنه. من از این زندگی حوصلم سر میره." باز خودتو به ناخوشی بزن و به برادرت بگو که مردم میگن هندونه باغ دیو سیاه علاج دردمه برادر که از درد خواهرش خبردار شد صبح زود سوار اسب شد و راه افتاد رفت و رفت و رفت تا رسید به باغ دیو سیاه از دیوار باغ بالا رفت اما تا پاش به زمین رسید دیو سیاه جلوشو گرفت و گفت تو کجا و اینجا کجا اینجا پرنده جورت پر زدن نداره. الان یه لغمت میکنه. پسر با دیو گلاویز شد. آخر سر دیو بالای سرش بلند کرد به زمین زد و نشست روی سینش. دیو التماس کرد و گفت یه دفعه دیگه منو به زمین بزن باید بکش. پسر گفت پیش ما دو دفعه به زمین زدن رسم نیست. ما دشمنو یه دفعه به زمین میزنیم. دیو نهره ای از ته دل کشید و برادرش دیو زرد توی خونه شنید. به دختر گفت بیچاره شدم. بدبخ شدم. اون یکی برادرم هم, هم کشت. دیگه تنها شدم. دختر خیلی خوشحال شد. برادر دیو سیاه رو کشت. دو سه هندونه چید و پیش خواهرش برگشت. هندونه ها رو به اون داد و گفت بخور خواهر. کاش که دوای دردت همین هندونه ها باشه. چند ماهی گذشت. دختر بچه ای به دنیا آورد. ترس برش داشت که چی کار کنم، چی کار نکنم؟ جواب و چی بدم؟ عصر برادرش خسته و کوفته به خونه برگشت. برخلاف همیشه خواهرش به استقبالش نیومد. برادر دید خواهرش رنگ به صورت نداره گفت خواهر باز چی شده مگه بازم مریض شدی دختر گفت از خدا که پنهون نیست از تو چرا پنهون باشه اومده بودم استقبال تو سر را دیدم یه بچه افتاده دلم به رحم اومد و برداشتم آوردمش خونه می ترسیدم تو بیای دعوام کنی که چرا این بچه رو برداشتم آوردم خونه برادر نگاهی به بچه انداخت و دید بچه خیلی دوست داشتنی و توپول مپولیه. محبتش به جوش اومد و گفت خیلی کار خوبی کردی خواهر اسم بچه رو گذاشتن آلتین توب روزها گذشت و دنبالش ماها و سالها آلتین توب بزرگ شد از که پسر از شکار برمیگشت، آلتین توپ جلو می دوید و دایجون جون میگفت می گفت. بعد اسب دایش رو می گرفت و میبرد برد تبیله. جلوش کام می و برمیگشت گشت. روزی آلتین از دختر پرسید پدر من کجاست؟ دختر هرچی جواب سر داد آلتین قانه نشد. آخر سر مجبور شد از سیر تا پیاز رو به پسرش بگه. بعد هم گفت که مبادا یک کلمه از حرفها رو بدایت بگی روزی بازدیو شروع کرد به نق زدن من اینجا تک و میمونم حسلم سر میره تو رو هم نمیخوام ول کنم برم بیاین زهر رو بگیر و قاطی غذای برادرت کن بلکه از دستش خلاص شی. دختر خیلی گریه کرد التماس کرد اما دیو دلش به نیومد و دست بر نداشت. از غذا آلتین پشت پرده حرفای اونا رو شنید. عصف که دایی از شکار برگشت جلو دوید و گفت دایی تا من سر سفره نیومدم دست به غذا نزد. اون وقت اسب رو برد و به آخور بست. دوباره برگشت به اتاق. مادر و دایی سر سفره منتظر اون بودن آلتین توب طول سگ رو هم از توی حیات گرفت و به اتاق آورد. اول از هر چیز گفت دایی یه چیزی بده سگ من بخوره که خیلی گرسنه است. سگ تا غذا رو فرو داد چرخی زد و افتاد و مرد دایی عصبانی شد شمشیرش رو کشید و توی شکم خواهر فرو کرد آلتینتوب گفت، دایی چرا کشتیش؟ اون بیگناه بود. اون وقت همه حرفا رو اسیر تا پیاز برای داییش تعریف کرد. دایی پیش دیوه زرد رفت و اونو بیرون کشید. اونو هم فرستاد پیش برادرش. آلتینتوب این موقعها پونزده شونزده سالش بود. تازگی تیراندازیو تیراندازی و شمشیر زنی یاد گرفته بود دایی به اون گفت آلتین تو دیگه ما نمیتونیم توی این خونه بمونیم پاشو بریم سر کوه خونه بسازیم دوتایی بلند شدن و دار و ندارشون رو جمع کردن و رفتن سر کوه چادر زدن هر شب یکی میخوابید و اون یکی کشیک میداد آلتین هر وقت کشیک میداد زیر پا و بال سر دایی شم روشن میکرد و خوب ازش مراقبت میکرد. یه شب دایی خوابیده بود و آلتین بیدار بود. یک دفعه شم زیر پای دایی پت پتی کرد و خاموش شد. آلتین اینور اونور رو نگاه کرد و به فکرش نرسید که با شم بالای سر دایی اون رو روشن کنه. از دور سوسویی دیده می شد. آلتین شم خاموش رو برداشت و راف داد و رفت. تا به یک دریچه رسید. زیر دریچه پلکانی بود. از پله ها پایین رفت. چهل دوز دور تا دور اتاق نشسته بودن و میزدن و میخوندن. قشق به پا کرده بودن که نگو. چند تا از دزدا میخواستن دیگه پولو رو از روی اجاق بردارن. اما هرچی زور میزدن نمیتونستن. آلتین توب جلو رفت و بقیه رو کنار زد دستنها دیگ و برداشت و پرت کرد یه طرفی بعد شم و رو روشن کرد و دو تا سیب توی تاقچه دید یکی از اونها رو برداشت گذاشت توی جیبشو بیرون زد چند قدم رفته بود که با خودش گفت برگردم اون یکی سیبم برای دایین بردارم از اون طرف دزدا فوری به سر دسته دزدا خبر دادن که چه نشسته ای جوونی اومد چنین و چنان چنین کرد و چنان سر دسته دزدا گفت زود باشید پیداش کنید آلتین تو تازه سیب دوم رو توی جیبش گذاشته بود که دزدا رسیدن و اونو پیش از سر دسته دزدا بردن رئیس نگاهی به قداغواره آلتین توپ انداخت و دید. جوون رشیدیه. گفت پسر تو جوون شجایی هستی. ما امشب میریم خزانه پادشاه رو بزنیم. حاضری شریک ما بشی؟ آلتین توپ گفت چرا حاضر نیستم؟ اما باید برم و یه شم زیر پای دایم بذارم و برگردم. آلتین توب رفت شم و سر جاش گذاشت برگشت و با اونها به طرف قصر پادشاه را افتاد پای دیوار آلتین گفت شما پای دیوار بیستید من توی قصر برم ببینم کسی بیدار نباشه تا خبرتون کنم اون وقت از دیوار بالا رفت و داخل قصر شد دختر کوچیک پادشاه توی اتاق خودش خوابیده بود آلتین روی یه تیکه کاغذ نوشت اگه قسمتم بودی خودم میگیرمت. بعد کاغذ رو با یکی از سیبا گذاشت روی سینه دختر رو بوسه ای ازش گرفت و رفت به اتاق دختر بزرگتر پادشاه باز روی یه تیکه کاغذ نوشت اگه قسمت بود تو رو برای دایم میگیرم کاغذ رو با یه سیبه دیگه گذاشت روی سینه دختر رو رفت به اتاق خود پادشاه دهن پادشاه باز مونده بود صدای پفش به آسمون میرفت اغرب سیاه و درشتی میخواست بره توی دهن پادشاه که آلتین توب خنجر پادشاه رو از کمرش کشید و فرو کرد به شکم کجدم گذاشتش بالای سر پادشاه خنجر خودش رو به کمر شاب است و برگشت و رفت بالای دیوار شمشیرش رو کشید به دزدا گفت یکی یکی بالا بیاید دزدا یکی یکی کمن انداختن و از دیوار بالا رفتن آلتین تو هم سری یکی یکیشون رو میبرید مینداخت توی قصر پادشاه آخر سر هر چهل تا دوز رو کشت و برگشت پیش داییش. صبح دختر کوچیک چشمش رو باز کرد دید سیب قرمز و درشتی روی سینه زیر سیب تکه کاغذیه که روش نوشته اگه قسمتم بودی خودم میگیرمت. عصبانی شد. تونتون تون لباساشو پوشید و دویید پیش پادشاه. بابا این چه وضعیه؟ کی این وقت شب به اتاق من داخل شده؟ پادشاه با سر صدای دخترش بیدار شد و نشست. یه دفعه چشمش به اقرب افتاد. هل لباس پوشید. خواست خنجرش رو توی کمرش مرتب کنه که دید به جای خنجر خودش یه خنجر دیگه است. دختر بزرگ پادشاه تراسیم وارد شد. به باباش گفت آخه این چه وضعیه؟ تو چطور پادشاهی هستی که دوز داخل اتاق دخترت میشه؟ تو توی خواب خرگوشی بودی و نفهمیدی؟ پادشاه دستور داد قصر رو خوب بگردن. قصر رو گشتند و جنازه چهلتا تا دوز رو پیدا کردن. توی شهر چوف داد که شب چهلتا تا حرامی توی قصر پادشاه کشته شدن. پادشاه دستور داد همه مردم شهر رو پیش من بیارید تا ببینم این کار کار کی بوده. پادشاه یکی دو ماه به تخت نشست. یکی یکی از مردم پرسجو میکرد عاقبت هم معلوم نشد کار کارکیه آخر سر توی شهر کسی نموند مگر آلتین توپ و دایش پادشا دستور داد برید اون دو نفر رو هم از سر کو بیارید ببینم چی میگن آلتین و دایش تازه از شکار برگشته بودن که فرستاده پادشاه رسیدن و گفتن پادشاه شما رو میخواد آلتین گفت باشه بریم. دایی گفت پسر ولشون کن. آخه ما با شاه چیکار داریم. ما خونه و زندگیمون رو ول کردیم اومدیم سر کوه دیگه سر کارمون با اینا نباشه. اما آلتین گفت بزار برم زود برمیگردم گردم. آلتین توب تا پیش پادشا رسید گفت پادشاه. اول خنجر من رو به خودم پس بده که لازم دارم. بعد همه چیز رو از اول تا آخر تعریف کرد که چطوری رفت شم زیر پای رو روشن کنه. دیگ... دیگه بزرگ رو برداشت پرت کرد یه طرفی و سیب رو برداشت و چطور دزدا از اون خوشش اومد. چطوری داخل اتاق دختر و پادشا شد و چطوری اقرب رو کشت و چطوری سر چهل تا دوز رو از تنشون جدا کرد. آخر سرم گفت حالا من اینجا بایستادم. میخوای بگو منو رو بکشن؟ میخواییم بگو نه پادشاه همون ساعت دایی رو صدا زد. دستور داد هفت شبانه روز شهر رو آزیم ببندن. اون وقت دختر بزرگ رو به عقد دایی در آورد. دختر کچیکه رو هم به عقد آلتین توب. بعد هم پادشاهی رو به آلتین توب داد و دایش رو وزیر کرد.